گفتانی ها کم نیست اگه تو برگردی گردی گفتنی هام Oh هم داری هم به هم می خندی هم وقت چشا روی من می بدی هم ازذا میدی بارون به بار رو عشق چشمان تاون تا نبینه گریه کردم و نبینه غسته میخورم و تنها کردم او نافین قص میخورم تر